به نام خدای یگانی مهربان سلام آیا تا به فکر کردید که چرا فلفل تند و سوزانه؟ اصلا این فلفل چجوری به وجود اومده؟ سرگذشتش چیه؟ در یک هزار افسان قصد داریم پاسخ این سوال رو در قالب افسانه از مردمان سرزمین ویتنام براتون نقل کنم افسانه چرا فلفل تند و سوزانه برگرفته از کتاب هدیه کلاغ مترجمان عبدالسلام پاک و تنگرولی یلقی در سالهای خیلی دور در سرزمین ویتنام دو دوتا برادر با هم زندگی میکردن اسم برادر بزرگتر تان بود و اسم برادر کوچیکتر لانگ اونا خیلی شبیه هم بودن مثل هم حرف میزدن، مثل هم راه میرفتن و مثل هم غذا میخوردن حتی خندیدن و گریه کردنشون هم مثل هم بود به همین خاطر هم فهمیدن اینکه کدوم برادر تانه و کدوم لانگ برای همه مردم اون سرزمین مشکل بود برادر ها هیچ وقت از همدیگه جدا نمی و هر وقت از هم جدا می شدن خیلی دلتنگ و قصدار بودن روزی تان برادر بزرگتر تصمیم گرفت طبق وسیعت پدرش نزد استادی بره و باسواد بشه بنابراین وسایلش رو جمع کرد و رفت سراغ و استاد چند روزی مشغول درس و مح شد ولی دلش مثل همیشه برای برادرش لانگ تنگ بود و خیلی نگران حالش بود روزی استاد که متوجه ناراحتی و نگرانی تان شده بود علت این ناراحتی رو پرسید تان گفت استاد من برادر کوچکتری به نام لانگ دارم از دوری اون دلتنگم و مدام نگران حال اون هستم ما هیچ وقت از هم جدا نمی شدیم حالا که چند روزی از اون دور شدم آروم و قرار ندارم استاد گفت مگه کسی اون نیست بذارم پدر و مادرت یا خواهر و برادر دیگت تان با ناراحتی گفت نه استاد ما تنها هستیم، پدر و مادرم سالها قبل از دنیا رفتن و فقط من همین یه دونه برادر رو دارم حالا اگه اجازه بدین برادرم رو هم به اینجا بیارم تا دیگه دلتنگ و نگران اون نباشم استاد دستی بر یه تن زد و گفت همین فردا برو و برادرت رو به اینجا بیار بسرم من هم از دیدن اون خوشحال میشم تان با خوشحالی رفت و لانگ برادر کوچیکش رو نزد استاد آورد استاد از دیدن لانگ خیلی تعجب کرد و نمیتونست بفهمه که اون واقعا تانه یا لانگ خلاصه همه از شباهت بیش از حد این دو برادر سخت در تعجب و شگفتی شده بودن و ما بشنوید که استاد دختری عاقل و دانا داشت و تان از وقتی برای یاد گرفتن علم و سواد به نزد استاد اومده بود یک دل نه نصد دل اون شده بود و تصمیم داشت در اولین فرصت دختر را از پدرش که همون استاد باشه خاستگاری کنه روزی استاد دو برادر یعنی تان و لانگ رو به خونش دعوت کرد دختر استاد که از شباهت دو تا برادر سخت شگفت زده شده بود با خودش گفت خب باید راهی پیدا کنم که به راحتی این دو تا برادر رو از هم ترخیص بدم دختر استاد شروع کرد به پذیرای کردن از دو برادر سفره ای رنگین با انواع اقسام غذاهای مطبوع و نوشیدنی های گوارا برای اونا پنگ کرد و خودش رفت گوشه پنهون شد و دو برادر رو زیر نظر گرفت بعد از اینکه برادرها تنها موندن لانگ برادر کوچیکتر ای رو از چای پر کرد و به دست برادرش تان داد دختر بلا فاصله فهمید که برادر بزرگتر تانه و برادر کوچیکتر لانگ و شکل و قیافه اونا رو به خاطر مدتی گذشت تا اینکه تان برادر بزرگتر از استاد اجازه خواست که از دخترش خواستگاری کنه. استاد هم که در این مدت تان رو شناخته بود و از اون رضایت داشت، قبول کرد. و چند روز بعد جشن بزرگی برپا شد و دختر استاد به عقد تان درآمد. مدتی بعد از عروسی، دو تا برادر تصمیم گرفتن برای شکار به کوه برن. تان و لانگ به کوه رفتن و چند شکار سئیک کردند تا اینکه شب شد تان برادر بزرگتر به لانگ گفت برادر تو زودتر برو و این شکارها رو بزنم برسون منم آروم آروم میام لانگ قبول کرد و به راه افتاد وقتی به خونه رسید، دید که زن برادرش دمه در منتظر اونها ایستاده و به محض اینکه که چشش به لانگ گفتاد، با خوشحالی به طرفش دوید و گفت تان، خوش اومدی، دیگه داشتم نگرانت می شدم لانگ خجالت زده شد با شرم گفت من، من لانگم، تان تا چند ساته دیگه برمیگرده و شکارهایی رو که سعید کرده بودن زن برادرش داد زن از این که اشتباه کرده بود خیلی ناراحت شده بود چند روزی گذشت لان تصمیم گرفت به سفر دور و درازی بره و دنیا و تمام چیزهایی که در اون هست تجربه کنه بنابراین یه روز صبح زود بدون خبر از خونه بیرون زد و راه افتاد و رفت و رفت و رفت تا اینکه به رودخونهی بزرگ و خروشان رسید اما چه سعی کرد نتونست از اون عبور کنه لانگ خسته و گرسنه کنار رودخونه نشست و از سر دلتنگی شروع کرد به گریه کردن. صدای اونو پرنده ها و دشت و موچای رودخونه شنیدند و اونا هم لانگ رو همراهی کردند و اشک ریختند. لانگ یه شبه تموم گریه کرد و وقتی صبح شد به تخت سنگی بزرگ تبدیل شد. و ما بشنوید از تان، برادر بزرگتر تان وقتی از خواب بیدار شد به سراغ لانگ رفت ولی اونو پیدا نکرد با خودش گفت حتما رفته شکار باشه منتظرش میمونم تان تا غروب منتظر برادرش لانگ موند ولی خبری از لانگ نشد که نشد تان سراغ برادرش رو از همسایه‌ها گرفت اونا هم لانگ رو ندید بودن تان تصمیم گرفت به دنبار برادرش بره و اونو پیدا کنه و به خونه برگردونه. با نگرانی به راه افتاد. و درست از همون راهی که برادرش لانگ رفته بود رفت و رفت تا اینکه به کنار همون رودخونه بزرگ و خروشان رسید و چشمش به تخت سنگ بزرگی افتاد جلو رفت و به تخت سنگ تکیه داد و روی زمین نشست و به فکر راه چاری افتاد که بتونه از رودخونه عبور کنه ولی هرچه فکر کرد راهی به نظرش نرسید تان که دلش برای برادر کوچیکش لانگ تنگ شده بود شروع کرد به گریه کردن. تان یه شبه اون گریه کرد و اشک ریخت. وقتی صبح شد تان به درخت سبز و تنومند تبدیل شد. اون هم درست کنار تخت سنگ بزرگ و سایش رو انداخت روی اون. چند روزی که گذشت زن تان که دید خبری از برادرها نیست نگران شد. و برای پیدا کردن اونا راه افتاد رفت و رفت و رفت تا اینکه خسته و کوفته به کنار همون رودخونه بزرگ رسید چشمش به درخت و تخت سنگ که افتاد رفت زیر سایه درخت و به تخت سنگ تکه داد و نشست و یه شب تموم برای همسرش گریه کرد و اشک ریخت صبح که شد زن هم به گل پیچک تبدیل شد و تن درخت بیچید و بالا است و حالا بشنوید از استاد استاد که دید نه از دخترش خبریه و نه از دامادش به اونها پرداخت. اون هم بعد از گذر از راه های مختلف بالاخره به همون رودخونه بزرگ رسید و چشمش به معبدی افتاد که یه تخت سنگ بزرگ و یه درخت سبز ترومند و یه گل پیچک در حیات اون رویده بود. استاد فکری کرد و گفت عجیب. من تا حالا چون این معبدی رو در این حوالی ندیده بودم استاد بلا فاصله فهمید که این معبد به قدرت خدا به خاطر دخترش و تان و لانگ ساخته شده و وقتی فهمید که اونها از دنیا رفتن به خونش برگشت و برای شادی روح اونها دعای خوند چند سال از این ماجرا گذشت در اون سرزمین خوش سالی بی سابقه ای روخ داد ای بارون نبارید و تمام مزره ها و درختها ها خوش شدن و فقط درخت و گل پیچک همچنان سرسبز و تازه مونده بودند همون درخت تنومند و گل پیچک مبتد روزی از روزها سلطان هونگ از کنار اون معبد میگذشت که چشمش به درخت و گل پیچک و تخت سنگ افتاد خیلی تعجب کرد و از اطرافیانش پرسید این معبد رو چه کسی ساخته؟ هیچکس کس نمیدونست اون معبد رو کی، چطوری و به دستور چه کسی ساخته شده و چرا درخت و گل پیچک اون معبد، با این همه خوشک هنوز تازه و سرسبز باقی موندن. سلطان هونگ تمام ریش سفیدان و دانایان سرزمین ویتنام رو به قصرش دعوت کرد و ماجرا رو از اونها پرسید. فقط یکی از ریش سفیدان از تمام ماجراهای های تان، لانگ و زن تان آگاه بود. اون برای سلطان ماجرا رو تعریف کرد. سلطان هونگ با شنیدن این ماجرا دستور داد که میوه‌های درخت را بچینند. مأموران سلطان هونگ چند میوه از درخت کنار رودخونه چیدند و به سلطان دادند. سلطان یکی از میوه‌ها را خورد. میوه بیش از حد ترش بود. سلطان دستور داد که میوه درخت رو با برگ‌های گل پیچک مخلود کنند و روی تخت سنگ به هم بساوند. وقتی کار تموم شد پودری از اون ستا درست شد که تاکنون نه کسی اونو دیده و نه کسی در مورد اون چیزی شنیده پودر خیلی خوشمزه بود مزهی تند و ای داشت اگه اون رو به زبون میزدی با وجود تندی مزه خیلی خوبی داشت و بسیار هم خوشبو بود سلطان هونگ که از مزهی اون پودر خیلی خوشش اومده بود شروع کرد به جویدن اون کمی بعد یکی از وزیران دید که لبهای سلطان پر از خون شده فریاد زد قربان قربان دهنتون خونی شده وقتی سلطان هونگ آب دهنش رو به زمین ریخت لخته ی از خون بود سلطان هونگ به وزیرش گفت این خون نیست نه. بلکه شعلهای آتش عشق و محبت دو برادر و وفاداری زن جوان به شوهرشه اونها انسانهای پاکی بودن و تا دنیا باقی است آتشش اونها خاموش نمیشه وقتی من از این پودر خوردم احساس کردم که آتش به لپام زدم اسم این پودر رو میذارم فلفل بعد فل. این بود که سلطان هونگ دستور داد تا در تمام سرزمین ویتنام از همون درخت و گل پیچک بکارن و از مخلوط کردن میوه و برگ اونها فلفل درست کنن. افسانه زیبای چرا فلفل تند و سوزان سوزانست رو از مردمان سرزمین ویتنام براتون نقل کردم به نقل از کتاب هدیه کلاخا برگردان عبدالسال پاک و تنقرقلی یلقی از طریق تحلیل دقیق افسانه ها میشه به اندیشه عواطف و باورداشت های نست گذشته هر سرزمین پیبرد و سیمای زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دوران های گذشته رو ترسیم کرد هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت صلح پور. ری راستدار کریمی اجرا مهران دوستی صداوردار محسن فراهانی تهیه کننده زهرا بدالله زاده تا افسانه دیگر بدرود